فصل پنجم به این ترتیب آنها به طرف دیگر دریا به سرزمین جدریان رفتند. همین که ایسا قدم به خشکی گذاشت، مردی که گرفتار روح پلی بود از مقبره‌ها بیرون آمده پیش او رفت. او در میان مقبره‌ها زندگی میکرد و هیچ کس نمیتوانست او را حتی با زنجیر در بند نگهدارد بارها او را با کنده و زنجیر بسته بودند، اما زنجیرها را پاره کرده و کنده ها را شکسته بود و هیچ کس نمی توانست او را رام کند. او شب و روز در اطراف مقبره ها و روی طبه ها آوره بود و دائمان فریاد می و خود را با سنگ مجروح می ساخت. وقتی ایثار را از دور دید دوید و در برابر او سجده کرده و با صدای بلند فریاد زد ای عیسی پسر خدای متعال با من چه کار داری تو را به خدا مرا عذاب نده عیسی به او گفت ای روح ناپاک از این مرد بیرون بیا عیسی از او پرسید اسم تو چیست او گفت اسم من لژیون است چون ما اده زیادی هستیم و بسیار التماس کرد که عیسی آنها را از آن سرزمین بیرون نکند در این موقع یک گله بزرگ خوک در آنجا بود که روی تپه ها میچریدند ارواح به او التماس کرده گفتند ما را به میان خوک ها بفرست تا به آنها وارد شوی عیسا به آنها اجازه داد و ارواح ناپاک بیرون آمدند و در خوک ها وارد شدند و گله ای که تقریبا دو هزار خوک بود با سرعت از سراشیبی به طرف دریا دویدند و در دریا غرق شدند خوکبانان فرار کردند و این خبر را در شهر و حومه های اطراف پخش کردند. مردم از شهر بیرون رفتند تا آنچه را که اتفاق افتاده بود ببینند. وقتی آنها پیش عیسی آمدند و آن دیوانه را که گرفتار فوجی از ارواح پلید بود دیدن که لباس پوشیده و با عقل سالم در آنجا نشسته است، بسیار حراسان شدند. کسانی که شاهد ماجرا بودند آنچه که برای مرد دیوانه و خوکها اتفاق افتاده بود، برای مردم تعریف کردند. پس مردم از ایسا خواهش کردن، از سرزمین آنها بیرون برود. وقتی ایسا میخواست سوار قایق بشود، مردی که قبلا دیوانه بود از ایسا خواهش کرد که به وی اجازه دهد همراه او برود. اما ایسا به او اجازه نداد، بلکه فرمود به منزل خود، پیش خانوادت برو و آنها را از آنچه خداوند از راه لطف خود برای تو کرده است آگاه کن. آن مرد رفت و آنچه را ایسا برایش انجام داده بود در سرزمین دکاپولوس منتشر کرد و همه مردم تعجب میکردند. وقتی ایسا دوباره به طرف دیگر دریا رفت جمعیت فراوانی در کنار دریا دور او جمع شدند. یایروس سرپرست کلیسای آن محل آمد و وقتی او را دید در مقابل او سجده کرد و با التماس زیاد به او گفت دخترم در حال مرگ است. خواهش می‌کنم بیا و دست خود را روی او بگذار تا خوب شود و زنده بماند. عیسی با او رفت. جمعیت فراوانی نیز به دنبال او رفتند. مردم از هر طرف به او هجوم می‌آوردند. در میان آنها زنی بود که مدت دوازده سال تمام مبتلا به خون ریزی بود. او متحمل رنج‌های زیادی از دست طبیبان بسیاری شده و با وجودی که تمام دارایی خود را در این را صرف کرده بود، نه تنها هیچ نتیجه‌ای نگرفته بود، بلکه هر روز بدتر میشد. او درباره عیسی چیزهایی شنیده بود. و به همین دلیل از میان جمعیت گذشت و پشت سر عیسی ایستاد او با خود گفت حتی اگر دست خود را به لباس های او بزنم خوب خواهم شد پس لباس او را لمس کرد و خونروزی او فوراً قطع شد و در وجود خود احساس کرد که دردش درمان یافته است در همان وقت عیسی پی برد که قوه‌ای از او صادر شده است به جمعیت نگاهی کرد و پرسید کی لباس مرا لمس کرد به او گفتند می‌بینی که جمعیت زیادی به تو فشار می‌آورند پس چرا می‌پرسی کی لباس مرا لمس کرد عیسی به اطراف نگاه می‌کرد تا ببیند که کی این کار را کرده است اما آن زن که درک کرده بود شفا یافته است با ترس و لرز در برابر عیسی به خاک افتاد و تمام حقیقت را بیان کرد ایسا به او فرمود، دخترم، ایمانت تو را شفا داده است، به سلامت برو و برای همیشه از این بلا خلاص شو. هنوز صحبت ایسا تمام نشده بود که قاصدانی از خانه سرپرست کنیسه آمدند و گفتند: دخترت مرده است، دیگر چرا استاد را زحمت می اما عیسی به سخنان آنها توجهی نکرد و به سرپرست کنیسه فرمود نترس فقط ایمان داشته باشد. او به کسی جز پتروس و یعقوب و برادرش یوحنا اجازه نداد که به دنبال او بروند. وقتی آنان به خانه سرپرست کنیسه رسیدند جمعیت آشفته ای را دیدن که با صدای بلند گریه و شیون میکردند. عیسی ایسا وارد منزل شد و با آنها فرمود چرا شلوق کردید؟ برای چه گریه می دختر نمارده است بلکه در خواب است، اما آنها به او خندیدند. عیسی همه را از خانه بیرون کرد و پدر و مادر دختر و همراهان خود را به جایی که دختر بود برد و دست دختر را گرفت و فرمود، تلیت قومی، یعنی ای دختر به تو می گویم برخیز. فوراً آن دختر برخاست و مشغول راه رفتن شد، او دوازده ساله بود. آنها از این کار مات و مبهوت ماندن، اما عیسی با تحکید با آنها ام کرد که این موضوع را به کسی نگویند و از آنها درخواست کرد که به دختر خوراک بدهند.